ایمان از ماده امنه هست تیکیه دادن پناه آوردن چیزی رو متقای خودش قرار میده میگن به اون تکیه داد حالا اون شاید یه شعی باشه در حال نشستن یا ایستادن تکیه میده به او، گاهی یه هست به پشتوانه پردی حرکتی رو انسان انجام میده گاهی این تکیهگاه خدای متعال هست ایمان در عبارات قرآنی و روایی معمولا به معنای تکیه قرار دادن خدای متعال استعمال میشه در قرآن کریم بیش از 870 بار ایمان و ریشه ای ایمان و مشتقاتش تکرار شده ولی در این تعداد زیاد پنجا و شاید هفت یا هشت بارش مشخص میکنه که این ایمان از چه نوع است دقت میده که این ایمان منظور ایمان الهی هست و راه پیدا کردنش رو هم در همون پنجا و هش بار در آیات ورآن راه به دست ایمان و ازدیاد ایمان رو مطرح میکنه امام علیه السلام یکی از راه های ازدیاد ایمان رو دعا معرفی کرده داره به ما یاد میده که اگر ایمان میخواین اون هم ایمان کامل که بسیار چیز گرامبه ها و مهمیز از خدا بخواید از خدا طلب کنید